حالا ممکنه با خودتون بگید چه گیری دادیم به این تعریف‌ها خب دوره رو ادامه بدیم دیگه و موضوع اینه که هر چقدر تعریف بیشتری از هیپنوتیزم رو یاد می‌گیرید و آشنا می‌شید و به گوشتون می‌خوره هم بهتر می‌تونید هیپنوتیزم رو دور ببینید به, سر... به عنوان یک پارامتر ابزار رایج ارتباطی و هم این که شما می‌تونید پس از این عین استفاده از اون آگاه تر باشید و دقیقاً به عمق مفهوم هیپنوتیزم پی ببرید تعریف جایی چیه؟ هنر به حداقل رساندن مقاومت ها حین هر گونه ارتباط برای رسیدن به یک مقصود و یک هدف خاص. به حداقل رساندن مقاومتها. و خوب نگاه کنید و دقت کنید ببینید منظور من از این مقاومت چیه؟ حتما شده که در طی روز تو زمان‌های مختلف یا و یه کسی حرفی به شما بزنه یه خواسته ای از شما داشته باشه بعد یه چیزی درون شما میخواد داد بزنه نه حالا ممکنه این داد درونیه خیلی آهسته باشه یا خیلی شدید باشه و منظورم از این نه همون مقاومت یه کسی میاد به شما یه چیزی میخواد بفروشه به شما میخط بگید نه یا یه کسی میخواد بیاد با شما وارد رابطه تشخیصی شما میگید نه یه کسی میخواد بیاد و یه پیشنهادی به شما بده پیشنهاد کاری یا هر چیزی و شما خیلی تمایل ندارید یه چیزی از درونتون میخواد جلوش وایسته و همه اینها همون مقاومت هستن و بنابراین اگر شما بتونین مقاومت های دیگران رو یا مقاومت درونی خودتون رو نسبت به یک تغییر نسبت به رسیدن به یک موضوع یک هدف و نسبت به پذیرفتن یک واقعیت جدید یک شرایط یا یک باور و فکر و ایده جدید اگه این مقاومت‌ها رو به حداقل برسونید در واقع ابزار شما برای این کار هیبنوتیزمه و شما موفق به انجام هیپنوتیزم روی خودتون یا دیگران شدید